توی یک کلمه بگیم با سوان دارم خب. سوال این مچه رایی فهمشید؟ رایی تنبه کنید اینا رو تنبه می کنید؟ تنبه خب فراموش که مطلب کم ندارد از این بکنه رو کلوسه چیه؟ اکسچنج بعد ها یاد از اکسینجه که هر جو رایتیلگم مستقره حالا بگونم ازامه ببینیم آره اصلا نوا بچه این کنکی های و این نمیشه گفتم اون سیستم های 64 بیتی از این موقعی اجرایش بکنیم باید باید باید روی دسترویویوتر رو ماکساند رو دانلوڈ بکنیم نهست بکنیم، بعد ک خیلی هم جاله وقتی رو پنجره باز میشه هم توی لیست آفجیبت ها گفته مثلا گفته یه فایل a.jpeg کش دارم یه ویدیوی ننم b.flb مثلا مثلا به آفجیبت ها رو دونجو رو برمیشت به هی درد هم الان چیه همین؟ باید شما <سؤال> یه آره باید اون گفته بودم که رپلیکیشن اکتیو دایرکتوری اکتیو اکتیو دایرکتوری الیمان ها که جمع می شدن یه object روز میشد شد دشین چی؟ اتشتن. اصلا یوزر اکان تشریف شده داره یوزی اتریبویت های مختلفتی که first name, last name, description, number of نرسته؟ اینا،, اینا جمع بشن چی به وجود می آنن؟ یوزر اکان. حالا وقتی که از accuracy رو replicate میکنه کنه attribute رو replicate می کنه که object به object رو میکنه. حالا اگه نمی دوستیم هم بگون فرق <تصفيق> وقتی که یکی قراره یه سایتی کش بشه، به کل سایت رو خواهد کش بکنه میاد اجکت های سایت ها رو کش میکنه که خیلی کش دغدغه‌تری بکنه برای وجود داشتن. واسه وقتی نایت بخوانی ببینی که اون رو اون کالکولاتور رو راحتی ببینیشی پیداش کنی یا نه. پس اونا که عادت به وقتی یه چولده، یه اون یه پله رو دیگه چه حالا خود پس این هم معقوله دیگه روی کش بحثی ندهیم فقط این نقطه ها آیا سیکیورنت ها هم میتونن از کش استفاده کنن یا نه؟ برده اوکی اینو رو پیست کنم من الان میام روی قاعدم این قاعدم کش آیتی ای این رو پاک میکنم خوب حواسط اینجا با جه خیلی مهمی هست کش پاک شد بعد رو تینجی کارت کارت یعنی هم کارتک رو کنم که دقیقه انسی که سی که من تو میتونه؟ نه نه نه کارم که پاک کنم. آیا می‌بندم وامت؟ پیشنهاد دادم دیپروتی و می‌شم. گذاشتم دل در دل داد. هک شیوده؟ هک. هک. هک. بود؟ هک. داد. هک. شده بود پس در تولکچلرش میتونی چی بگیم الان؟ همه اجکت هم اجکت مارجکت ما که داشتیم چون چیزایی دیگه بالاش بود دیگه الان چیزا رو نیاون داره میاره خوب خوب. نیاون خوبه به هر حال کش شده. مثلا یه چیزایی رو خاطر چک کنه الان نمی‌دونه هی داره دونه ولی این اجکت همه دارن کجا میان؟ اینترنت الکترولار رو, رو, رو دوباره کششو پاک میام تنظیم ویبکوپسی رو از اون ورد دارم بودا این چیجو نباشیم اوکی که پاککر کردم. باید میام تو انسی سی به صورت به اینترنت رو میگیرم اینجا بدم سن هشتار سه دی اینف میتونم هرچی بدم دیگه مثلا چهاتا هشت میده اوکی, اوکی. خب توجه کنم مخانی تصمیمی گیر، نتیگیری کنی بردنا پس اول اگه من به اینترنت بخواهم بردشم فقط جانم چجور بردشم سیکیورنسی خوبهر خوبه اجازه داده بودم فیلمهلت سیکیورنسی بردشم دیگه ببینم یه فایروال یه نام تعریف کردم یوزر هم که یه نام دیگه گفتم آل یوزه مشکلی روی تی ام جی مقام ندارم خب میام روی قائم قائم قائم میکنم دردردردرد تارد تک دارد و آر جی این برای ویب پروکسی ها وقتی زدم تیزو به هرها اوزو با این دوست به دیگه همان داره میاره اینو؟ نه نه حالا هم بختمان چیه؟ مشکل من چیه؟ چرا از او کش نمیاره؟ آیا باید به این از جو بگذیم که سکرومت ها از کش استفاده نمی کنن؟ یا اینکه نه سکرومت ها از کش سعوده استفاده کنن؟ اما داستان داره؟ بیان آبورد. انسان اولیه میشته تو میشه دیگه این سحنه را که میبینه شروع کنه به چی دادن؟ تس دادن از, تو... از, از کش استفاده میکنه انسان اولی این رو بگره کنه بگیده چی؟ بیدی اگه قرار رو کش بکنی فقط باید ویب شده باشی یا فایر باید خرایم باشی که تو لایل یه هفت درخواست بره باید بسیاره باید از کش هم هم بیدنی کاملا اولا غلطه حالا چرا؟ اولا یادت باشه بیگم اونیش دستی کچک میشوندیم پوبر بگم وقتی یه سایت کشم میشه در دلیلاً چه URA بیزدی مهمه؟ یعنی شاید یه سایت هم با www.a.com دای باشه اگه بزنی www.a.com دای هم وقت URA به www.a.com اومد میتونیم اونها تو کشم میکنه اگر تون میخواد کام خالی هم وجود داشته باشه براش و تو کبرا در در روزیات ای داست کام زده خالی بزنی پیج رو نشون نمیده چون منتظر که چه یو بیاد که همون سایش رو نشون بده؟ در در در در در ایلی این امور این رو شو به خود نیمیسونده مهم از 400 باید که همون چون یه سایت ها هم با دبل باز میشه هم بدون دبل دبل یو باز میشه نه آیاتان میاره اما که با دبل یو دبل با دبل باشه بدون دبل دی دبل بزنی از تو کشش نمیاره چون میگه که قبلا برای ما شما خوشده ال ها با حواظش هست این یه دلیلی باشه برای که اون آبژیکت ها های, های سایت های مختلفی کشم میکنه URLشون هم حفاظشون هست که URL این آبژیکت ها به داشته کار <متحد> حالا پس سیکیور به سیکیورنات بگیم سیکیورنات ها هم برای اینکه بتونن از کشف دو بزر بکنن URL اینجا مهم میشه حالا ما نظرمون با انسان اولیه فهم میکنم اولی اولیه کلا میگه سیکیورنات از کش استفاده نمیتونه بکنه ما میگیم سکیور نت از کش هم استفاده میتونه بکنه اما الان اینجا زدم نه ورد تا دلایلشو بگیم و بعد ببین نه اصلا کش میاره نه یو آر ال ما شد حالا بعدی که خیلی مهمه ببینیم تو وقتی که شلته وب تو به اینترنال بحث میشی نیم رزولوشن رو خودت انجام میدی یا یعنی اینکه میسه پی جی بعد انجام بده اما وقتی طرف از سکیور نت میشه از کار که توی اینترنت حتی هیچ آده که پرکنی هست نجده www.yahoo.com ذات او اس اینه که وقتی یه اس زده شد برو سراغی چی؟ DNS. اسم رو به بکن بعد که اسم به آیپی یا رو پیدا کردی برو سراغ گیت بید دکن به این رو داشته بگید یو آیپی رو داشته درسته؟ پس احتمالا الان جمعات چاش نمیتونستم کنم مشکلی نبوده که چرا چرا شده؟ دل نبوده که تو همون فاز از دو دو دو دو دو دو دو کارش که دو دو دو دو که دو دو دو دو بعدن به خاطر دیتابیس برسار برسار رو سرغات دی ام دی که آقا منو از کشت مثلا رو بعد بردا بیار یا برو دیتا رو از من کلا بردا بیار الان زیرمون گیره چیه پس ما گیر دی ene خب، چی کنم مشکلی در طرف شه این کنیم و ببینیمش خب، نه اینترنت هم غثن حرف رو هستم یه دونه میکنم خودم هم بهش میگم سوال 11 چی بپرس؟ رو هاست. بعد یه بار به سایت وقتی میشیم که اسم تبدیل به آی پی بشه و دی ان اس هاستمونو چک کنه، کش کنه. بعد کش کرد، کارچک که کنم؟ دیفایو کنم. حالا اگه یه بار دیگه همون پلید سکیور به بپوره www.hostek.org میخوام برام باز بشه، اگه دیگه جواب داره بش یا نه؟ پس به دینستیش ایجا رد میشه یا نه؟ رد میشه بعد احتمالا این دفعه میره سراغ تی ام جی که مرا به این یو آر و به این آیکن رو جدا ورس بکنم موقع کارتک تی ام جی که بسته هستش شاید تلاش بشه که بره اروچی برداره بیاره نیتاره نشون بداره خب اول هر چقدر نه آدم امون error دارستی که حالا بریم اون حالت رو ببرم جلو ببینیم اون حالت رو چه دی نسید دینست به د نرس ما کرده بود TMG کرد آن TMG نرس ما کرده TMG رو بیارم بالا نرس کرده بودم نرس کرده بود که نرس کرده من دیگه باقا دارم تو کشه این دی وجود داره یا نه؟ نه چرا تو سوال پورتیده؟ ncpa.cpl کارچرکش رو اینابل کنم بسیار حالا بیان اینجا پای client هم همین URL یه ور پیزن هم اگر dns client چیه؟ همون dns نه به آه، میشه 8 80 صد، درسته؟ یا ببرندم؟ یادتان پی، پلاس و بعد کش اینو بکنید. یه نه. آینه بنوگونیم. PART PEC ORG خب یکی هر کشم باید بیرم تا افلا بودم بعد این پایین یا تو که شد کامو دارم و ORG آورد یاو لاویش هم آدی بهم داده بعد از این اونجا که فقط آی که بهم در واقع آی پی نده. چی داده بهم اون؟ یه الیاس داده. این در واقع شاید بخوام اینو دوباره بزنم. باشه من اجازه تو میام. من اینو میبندم. کارت چرخه اکسترنالم رو. بعد میام میگم کلاینت هم برم هم کلایچ پاپ کنیم. دینست همه ما هر بیمونه انسرکا سال ها از چیز هم میم بردم سال ها میم بردم سال های چیز هم پک خب مشکل نه که پاک کردم و پروکتن که نیستم حالایی دار دار دار داد دار دار یک g سر یک آقا ارو ارور داد بهمون همونم مشهد قطعا مبینه میده یا نمیده میکنه خودموید موشون اکیب داری توی جو دیگه این کارو که اینطور که معلی کرده هم انجام بیدی که از که بکنه خب یا نه؟ خب خب حالا چی حالا الان مشکل چیه؟ مشکل مشکل سایت یا دینست که چیگه نیست باقیم یوارلا دو قریزه یالدیه اچ تی دی پی دونا پرسهلا به به و تحمیلش نگیرم خب ما تمام حالا ترکی میره چی باشه واقعا سکیورنس از کل استفاده نمیکنه خب که بنیشانه واقعا معلوم که یه کرده ببینیم کسی راحت کنم واقعا سکیورنس از کش استفاده میکنه اما جیلی که ما داریم الان میره چیه؟ یک مرحله اول رو که پورت یعنی وقتی تو میگی من اومدم دیوار اینو بکنم اون بیشتر ذات او که بره اول اینسان تپوز آیدی کنیم خب ما حالا اون رو برطرف بعد مرحله بعد چیکارش چیه مرحله بعد چیکارش اینه که بره خودش به اون آیدی به پرت هشتادش برکه الان من زدم رفتم به پرت هشتادش برکه دیدی که تو نتساب نمیشوند اما چون اینترنت هم چی شده نیستن شده ارتباطش برقرار نشده خب حالا اگه ارتباطش برقرار بشه به پورت هشته دارش برقرار بشه اون URL یا ها که قرار سایت رو بیاره رو میده به TMG یا نه؟ میده بعد اون وقت و ال رو اگه ببینی که یو اون ال رو کشش وجود داره واقعا میاره و رو کشش میده یا نه؟ میاره باقعا رو استفاده میکنه یا نه؟ الان که کارت هم اکسدرالام دی‌سیبله چون نت بده ارتباط پورت 80 رو با سرور استابلیش کنه استابلیشیکر اون یو آر ال رو اونجوریه چون اما میدونیم که مثلا نپلاس میدید دو کامپیوتر وقتی شما لود تاگاه اون داده میشه هماهنگی بین مبدا و صورت میگیره بعدا ارتباط یعنی بعدن تو لایه های پاینتر او آی ارتباط واقعی با سشن اول شده نه حالا تایتما هم می کنیم بگیم این چیزش الان اونه حالا من بنام کارچرکش رو اینویبل بکنم می دهم سایت دیگه رو بیاریم پیگمون کنم سنگین تر و این چیزا باشه ببینیم همون مثلا سایبرتکه خوب بود سایتش سنگین و بزرگ هم من میام اینجا کارچرکم رو اینویبل میکنم بزنیم. بعد بیا خواهی ترایم همین رو کنم درجه یا نه این معلوم کشف بود دیگه باید باید رو سای کشف همه رو خواهی کلایی هم در که چیدن تو که چیدی هم وجود نداره احسان از اینترنت در رو با این فرق پیجا رو بود سرش رو حاک کنید هشه آیدی رو اکتر آیت آن ودیفه مجحبت بود دیگه دیگه اصلا طول نگیگه درجه بردی یا نه برد. حالا باز اون تسل رو بزن میبینم نتیم میگیرم یا نه تشکل آیت کشو آجیرم که پاک کردم جبه در جبه بذار سایبر سک من اینه دیگه دردردردار تایی پر تک در آیا خب مشکل ریزالف هم ندارم دیگر همین آجی که رفت سراج خب یه رفت سراجه هم پیج به هم یه باید بکنیم. کجا آنه حالا ترشنجین بین 9 آسامیو باچر چون یو آر شده بود میتونه دیگه یک موقع بدم oder ratet wie. Fang. Wer will kommen فکر کنم قبلا هم اون کلاس هستم این جمله رو بارها شنیدم. واقعا نمیخوام علیکی تعریفی بکنم از اون که ما داریم تو کلاس این کارو میکنیم این کار میکنیم اما واقعاً اینجوری جنس کلاس بردن جلو رو برات نیبرن، جلوتو راحت بکنم. ببین ما همه چیز رو تست میکنیم به نتیجه میرسیم بحث میکنیم وقتی شدیم موضوعش رو راحت میشیم من برات همین دونه دونه لحظه تست کردم. حفظ سکیور داره الان از فاش کردن میکنه فاز دپورتي اون علی اون لحظه پیجورد نمیاره دلیلش چی دقیقا برمید چرا فاز دپورتي میزنه نمیاره چون اصلا دپورتي خودش نمیخواد لایسنس خود خوده من فاز نمیکنه که برم اون سایت رو برذره بیاره تو لایه حفظ ارتباطو میدرسه اونم سرور لایه حفظش آزاد نشسته یا تی ام نشسته میگه جواب میده درجا اما وقتی که سکیور نتی داری کار میکنی سکیور نه خود سیستمته که میخواد تلاش کنه بره اونجا. اولن اول بتونه سشن 806 بکنه تا بعد وارد لایه بعدی بشه. همینا رو برای خود تگید تحلیل کن هر سوالی بپرس ما اصلا در خدمتیم. اگه سوالی هستش قواله شده که بوکه دیگه. جواب بده ب. خب بیا اینا رو خود الان خود تست بکن سوال نقطه چی دیگه یه بپرس گوش بدم که ببینیم اگه شما جواب حالا میگم بوک تو بزن شما خواده خواده شبه شبه نه؟ شما این شما 80 شما 80 شما 80 شما 80 شما 80 شما 80 شما 80 شما 80 تی امجی فقط ری شما رو که تو لایه 3 اومده تی سی فید یعنی لایه ترانسپورت تو لایه ترانسپورت میخواست به این حالی وقتا به پورت ها شدهش ربتی چیو؟ گذبهش تی تی وقتی داره سکی رو نصمیره دیگه من دوست شاله هرچی هست یا او داستو بی هرچی هست میدرم شاله تی امجیه تی امجی میگه منو وقتمون به من به اینتگرا عامل گیم هست که نمی‌دونم. آ من به نوری که می‌ندارم به یه آی و واسه من نیست. خب می‌دیدی دست به گیگت گیگت ببر برسون به اون مقصد دیگه درسته؟ اینجا کیجا همین حالتی هست. که به پورت 80 و به پورت 53 و به پورت 22 و مختلفی که ما تو اینتر می‌بینیم اصلا نمی‌کنه که. مگر اینکه تو تو در پورت یا که دوباره به اگه ۱۰۰۰ داری کنگویم فرس چرا مرد میداریم نیمیدر میزوسته اگه بیده پروسی بودیم اچی؟ شما که با که سوال مشکل نکته لطفاً خب، این همیتر کنم ها نه موضوعه ترداری خودم دوتا خاطر داریم ولی یه سورج داریم امه هم گرفتنی سورج ممکن اون که خیلی وقته اومده هم هم امد؟ سورج کنم هشته هار بیهترا آه تو اون هشته هار بیهترا با رموینه هم اومده بعد هرامی قضیه پیمزود راه کنم مشکل نمی دو پیمزود ما راه مدادیم ها نه، از کلانده اون جوشی توان گفتم که ایش داشت باشیش دوتا دارم، رو داریم، از و اینکرمت کار می کنه؟ الان پابلیشش نکردم روی ولی ممکنه به که اینکرم بکنه خب آخه که باید کامپیتر داخلی شهر می کنم اکتیبی داخلی تا کار کنم ها اگر از اینکرمتی دیاره اما یا تو دیاردیم اون قضیه رو هم این بعد این رفتون تیز بعد امارم زیادم یه رئیس اومد اون به هم اوکی اوکی محمدی هست ما چیزه هست چیز هست؟ چیز اون ما کاری یہ ساختمان تو لارستان ہے یہ ساختمان تو تو ا <لان> <سجان> <سجان> نا اون همین این دسته این دسته این دسته این دسته این دسته این دسته این دسته یه هفته رفته میزگوون، یه لوکا رو نمایانه از اینجا از بیا اینا تو نمیشه استفاده کنه بعد اینا پیدا کرد حالا تو سرور میدن حالا استفاده بکنی اکسترنال دیسیبل بکنی اوکیه وندور میاد سشن کی به میدن دیگه اینقدر تو آه، دوست داری؟ دوست داری؟ اینو کیکون؟ اینو کیکون؟ اینو چرا؟ اینو بوده اگه وب کانتنت قبلا خودش حافظه چیزی دانلود کرده به پروکسی بزنی ببینید پیج میاری اونم هم هم و هم رفته به updatedmicrosoft.com عادی باز کام اول <تصفح> ورده ببین جانو کون دی انه ده من پیشتر دی جانوش پیش بر کانتیکس کشت دکافت رو این فیلم نمیده من دادم کش دکافت رو بیا دیگه ما دام اینجا view از پیش بر اینجوریه درست رو کار شما باید که اولا که باید کلیک بکنیم بعد بعد view از رو بزنیم آدا نه این کانکت کچو کاپ میاد حالا اگر چیزی کش شده و چیزی بده نشون میده اینا کچ برگاه بگیرم <S Programs> آه را گیری ما افتخار بده آکیان ولی همه مدام Bu konuda bir daha آدمی. درطا خب، فرض ما برای جلسه دیگه، یه به بدم ولی برای جلسات دیگه می‌ریم DMZ را بندازیم. ببینیم که چه جوری می‌تونیم دی داشته باشیم. آقاشنگ دی‌ای‌زت ایمیولیت می‌کنیم اینجا. یه دی‌ای‌زت را میدیدون توی تو شو وب سرور بعد یه سری کامپیوتر رو ستی کنیم مثلا یه از اینترنت دارن میان یه سری کامپیوتر هم می کنیم مثلا یه جوری داخل شبکه لان نمونن هم اینجا هم هم رو تنظیم کنیم اما قبلیش برای که بتونیم اینو بفهمیم اینو یاد بگیریم باید وارد درس نتورکینگ بشیم پس الان دیگه بحث کچینگ 70% تا 90% تی اینجی رو که باز می کنیم کنترل تی اینجی؟ یه قسمتی داریم جا تحت عنوان چی؟ نیستورکینگ خب این نیستورکینگه چیه؟ ببین ما می تونیم نیستورک مختلفی رو به تی مون متصل کرده باشیم مثلا شاید من لنه های مختلف داشت داشتیم به یه تی اینجی وفلن لنه های مختلفی شاید به سبوت مستقیم با همگه ندارن و اوا به هم به تی ام جی خوردن و علاوه اون تی ام جی دارن اینجوری نذار میشن یا حتی چه دارن به هم دیگه میشن خب بعد این که رابطه این لنگ ها با همدیگه چجوریه روابط این لنگ ها با اینترنت چجوریه چون چه بسا من لنگی داشته باشم که طول اونها همه کانفیگ اِی پی پابلیک داشته باشن اون وقت اون وقت میخوام به اینترنت رفتم مثلا نیازی دارن که این تی کنه نه شبه تو تا دیگه مستقل. مستقیم شما برای خود ایشان میتونم فقط از طریق گیت بهشون میشم پس این روابط بین لنهای مختلف با همدیگه با اینترنت و اینکه اصلا با چه لنهایی داریم؟ انواع لنهایی که داریم چی هستش؟ اینها رو همه رو تو کزون قسمت باید کامپیت بکنیم؟ قسمت نیتبورک. هیچ فرق تو قسمت هست برگی خب یه سری چیزای استانداردی رو هرم نگرده شما اکسترنال کجا هر جا به اینترنال حالا اینترنال کجا همه ای پی آی, پی آی تو نست به تی ام جیت دادی، اوکی؟ مثلا ما الان بیام اینترنالم وقتیش هم نست میکردم جای بیار رو بشتادم دیگه رای کلی کنم پاس بیرسی که یه سه بوده که دیگه خوردریش مونده که حالا بعضی در دو جلوتر میرسیم بهش که در واقع کارپ و کو ال بیو اینجوری تا یا سی ار میشه چون ما استاندارد نصب نکردیم انترپرایز نصب کردیم ما گفت استاندارد نصب این تو وجود نمیاد خب پس اینو داریم آدرس از وارد میکنیم اینجوری دامین های داخل شبکه رو میدادی که بر که اونها اگر داشتن بک دومین داخلی از اینجا دومین داخلی مشخص شده دیگه اینا رو به فایروال ارسال نکن. این دومین هایی که اینجا وارد می‌کنی برای کلاینت هایی که به صورت اتو دیسکاوری یعنی اتو دیسکاوری یا ثقط می یا از طریق دی اچ سی اوتو دی می فهمن که یه که این وارد کردی اون باشه یه به ارسال درچ اون فال درویی میری میه که این رنج آIPی ها آPO ای داخلیند اون دومین هم که اینجا تو اون فال دری دسته درج میشه این دومین ها دومینایی داخلیند که هم به پرویات هم بار بارلاتیات وقتیخواخاطر اون دومین ها به اون, اون سایت ها به اون آیپ ها بچند به کورسشوندی که به سمت TNG ارسال نکنم خب اینو میدونستیم حالا من هم توضی کاملتر دادم کل خو کردن نمیشه، بعد لگالات خودش میشود، خود تیم جی میشود، و یه نکته که این لگالات یاد گرفت اینه که پیش خود تیم وقتی میخواد به اینترنت برسدش از کشینگ خودش مینه استفاده نمیکنه. میراست اگه قصدی اکسلرنوش بودن میتونید اما اگه قراره که بدونی یه کاری بکنی که برای کشینگ این خودش استفاده بکنه، باید روی این امضای بکنید بکنی، رو بگیری. اینجا تا رو بزنی. اگه نادنی مستقیم میره اگه بزنی از کش خودش استفاده میکنه اینم به معنی یه نکته بنید خود اگه میخای ت ام از کش خودش استفاده کنه لوکال ها این چیک مارکر رو بزن دوباره سی ای ار بی اسمش آشناست بنگیره به چی انترپرايز خب حالا که چیه وی پی همه یه به صورت به تو کلاینتی که بیرون از داخل VPN به CMG بعد شده که باعث از بهش اینکه لند استفاده کنه چه قرار می‌گیره؟ بعد، آن‌تایم VPN کلاینت هم که یه بار داخلش بحث کردیم با همدیگه، چی بود آن‌تایم VPN که اومدن به VPN، به مثلا به PMG وصل شدن، اما نقش داری، اون شرایط نفو رو نمیکنه. راستاً تو رمدیت نتورک که اون رمدیت نتورک اون چی که خب ما با این میگم اینجا را کلیک کنم اون کد دارم، نیو. نیو چی میتونم کاری بکنم؟ خب این نتبورکی که داری درست میکنی جنسش چیه؟ چه نوع نتبورکیه؟ اینترنال نتبورک اینترنال نتبورک کانتاند رایی کامپیوتر در بور کنید کامپیوتر هایی هستند که تی ام جی از کنه؟ محافظت میکنه در برابر اینترنال را تو شعبه های آنترازده خب اینترنال نتبورک های شوید دارم یا نه؟ خب اگه قرار شدون من ب یه شارکی لند دیگه معرفی بکنم میتونم بیام ایند خوب درست بکنم اون شرکی لندونیه مثلا یه دیگه توت او باید یه کارت شبکه دیگه هم داشته باشی که بگی این یکی لنم واسه به این کارت رنج آی پی هم اینه اگه یاد بشه وقتی داشتیم تیم ام دی رو نصب می‌کردیم نه این پورتید که خودون کارت چاکی داخلیه رنج آی پی رو بگو خاطرجا متعقب کنید براش دیگه می‌خوام یه یه‌لارین مینتفاصلات رو با این که چیکی تو دومون براش یا نه؟ حاضر میشه. دوباره همون قانونا همین صادقه دیگه. کارت شبکه‌ای که برای اون لَند می‌دی باید یه آی‌پی از اون لَند حداقل داشته باشه همون داستانا که قبلاً می‌دونستیم. خب. بعد اکسرنال نتورک. آره، همین. اکسرنال نتورک. اکسرنال نتورک نت یعنی چی؟ نتورک خارجی. خارجی. تو یاد می‌یاد. اَکسرنال نتورک پَام راضی ریپرزنت ان اون فروستد یه به تنهایی مثل کجا اینترنت اینترنت از دیفال یه دونه دیفالت نتورک داره پیش وقت خودش می یکی دیگه چه در یه این شرط اون که یا با شرط این سی یه شرکه لند داشتم اینجا تا حالا وقت بوده به کارکی به یه کارکی حالا به من بودتن اگه یه شرکه لند دیگه داریم اینکه هیچ ارتباط با این شرکه نداره در چه من بردوشم یه اینترفایس دیگه اینجا بذارم این شرکه لند دو بک رو تعریف بکنم این شرکه لند چیم؟ دو دو اینجور یه ارتباط بقیر شد خب یه دلیل درده که من بیام یه نسبورد د اکثر واقعا خودشان پرداخ بوده، پیش‌فرض یه اکسرنال داره، کجاست؟ اینترنال. چه داریم که من یه اکسرنال دیجیتالی بکنم؟ هم موبایل داره. هان؟ تو چه دلیلی واسه می‌گی نه شبکه دیگه که یه دیگه روش اعمال یه جور دیگه باشه. شماره IP آقا قصد داشت از سمت اینترنت با عنوان میگم آقا یک سری آی رنج آی پی آی یه خواهی یک آی پی خواهی هست که اون قرار بیاد وقت بشه به تی جی من از یک سری از خدمات روی تی جی من استفاده کنه مثل چه خدماتی؟ ببین من یک کلاینت داشته باشم روی اینترنت میتونم ویب پروکسی تی بکنم؟ میشه؟ اگه قرار ویب پروکسی تی بشه این بشه این کلاینته یعنی شما وقتی اینکه روی بوت کنه آی پی تی ان جی کنه یا نه خب کدوم آی پی تی ان رو باید کنه اکسرنالش رو یا اینترنالش رو اینترنال خب که اصلا کار نمی‌کنه پس اکسرنال خب منم رو کارکتر کی اکسرنال تی ان جی اینجا راجی با پراپرتی اینجا اصلا تبی به داریم در حالی که روی اینترنال والدی من پروف کافی بدی. به کوپی داریم یا نه؟ گفته اون رو ادین چک ما خوب بزنی یعنی تی ام جی داره روی این این در واقع نتورکش خدمات وب پروکسی یا نه؟ میده. حالا که بازدار خدمات وب پروکسی میده؟ خب حالا. پس اگه قبل کلاینت هایی که تو اکسترنال نشستن بتونن به عنوان وب پروکسی تی ام جی من بشن. وب یادت قبلا روی اون نتورک من حچی رو فعال کرده باشم یا نه؟ ها؟ خب اپلیکیاتی که الان فعالش کنیم؟ گوشی شارژ ندارم، بکنم؟ خب سوال، چه دلیلی داره که اصلا من یه اکتمه درست بکنم که تازه بعد میام خدمات و پرپتی بخوام به کالیتی اکسترنال بدم؟ اونا که خودون تو اینترنتن. هم؟ همین. سوال. وقتیاردن. همین که پرپتی می فروشن. دیدی قبلا الان وی پی انیم مورد شده. این ناتین پادین از دو می شب میگفتن اگه میخوای بدون پکی یعنی دی بیستری نه حقیقتا ولی با فیسبوک باعث آی پی آی بود میگفتن اون آی پی ا رو برو تو اینترنت اکسپلورر <ترج> domain.com <پروتسی. ترجم> اون آی اون ا رو تو تو اینترنتی اما وقتی میخوای وقتی پوزیتر میکنی تو رفتن به اینترنت واسه دیگه اصلا تو اون دست بوده نمیکنی تو به اون سرور اون از اینترنت خودش میره صفات و عمر میاره بهت میده درسته پس می بازار رو می دویدیم برای خودتون این ترنت وقتی یک درده رو سنتر ایران تی هست مالی یک تر ایپ خاص تعریف کردی. به اونا گفتی که خیلی خوب شما به این ایپ من و این ایپ اکترنال تی اینجین رو دست بکنید؟ باید این سرسی پیمان موشنن به این نه؟ خب حالا من اینجا انتخابش بکنم راستیلی بکنم بزرم نیو نیت حالا مثالا بزرم رو یا بهتر بود برای موشنم بر و تو میشته کشون چیان؟ نکس باید دگم ایکترنال آلا میگه چی رو برو؟ رنج آی پی اونا رو بگویم خب رو کارترکه هم که چیزی دردارم درداری میتونم ادرانیت کنم بگم 91 205 126 90 تا 91 205 126 95 اوکی این سطح آی پی آی پی های چی هستن دیگه نیک و فینیش حالا یه پورت اولت در جنده چی؟ و وقت کسترنای هم مثلا بود دیگه. روی این رایت می کنم را بگیرم کل به دارم یا نه چک تو پیشور ببین که؟ نخورده, نخورده. چک ما خاستی بزن حالا کامپیوتری که تو اینمثل آی بشه آ 21۵ تا 95 باشن میتونند بیان آIPی کس externalال که اینجوری به خودشون. و اون وقت ریکوست هاشون را اکترنالی بفرستن تو این اینترنت کرستن بفرستن به کارچک اکترنال تی اینژیم کارچک اکترنال تی اینژیم ریکوستر میگیره اگه اون چکمان کنی دردوشی توی سری بی میدید بعد دوباره خودش از دو هم کارچک اکترنال خودش میره اینترنت. انترنت ریکوستر میاره جواب میده به کی؟ مثلا <متصال> اردینگی وای فائی هست. 88000 آی پی اینا اون که پشت این آدم اون که اصلا نمیگیم اون که خوش تو اینترنت هست. یه بتونه به تو وقت به هر حال. حالا هر که میخواد با دایل اپ بخواد واسه پشت دیش میشینه واسه میکنه. نه تو اینا نمیشن. یه کاری کنیم عذری نجار دادم از این وقت داره ها همه پس خب. یکی از دلایلی که من میخوام یک اکسترنال نتورک درست بکنم چی شد این خب. آیا حالا اینترنال می خوام کنم چی؟ اینکه اسم اینترنت تو نتورک فقط شرکت سیمورخ تو قرار بهش به عنوان یکی از شبکهای های یه تو باشه خب سیمورد سیمورد نه حالا اینجا دیگه کارچه هکه داره یا نداره؟ داره این رو میزنم کارچه که مربوط میشه به نیست پوک سیمورد یعنی مثلا این باشه مثلا فرسم اینجا اندقایش بذارم که رنج آرپی هاشون جوشیده چی شده؟ نداریم من اینجا دیگه متاسفانه. میدونم حالم رتری بکنم برم بعد دو دو شوز و یک یک پس ود دوشونم یک هنجا که حالا فقط سوالی که پیش شما اینه که پو گوش سوالات این سوالات بسیار مهم الان که من اینترناالنت برچ سیما رو درست کردم کارت شبکه لن بهش دادم دادم. چی دازم بهش؟ رنج میتونستم رنج رو برم توی همون کارچک ای اینترنال خودم که دیفالت وجود داره این رنج رو همونجا عرق کنم یا نمیستم میتونستم چه داره که مثلا می ندفورکی جزبونه حریف رو کنم تمیدیش شو؟ آم؟ مدیریت. مدیریت چه مدیریتی؟ اوکی okay, همینجوری هم میتونید بیاین اینا رو دارید بکنید اینجا رو میتونید بیاید تو قسمت اینترنال تو قسمت آدرسون روی آی پی رو اونجا بکنی بعد اینکه ده دقیقه دیگه بهش بدی که با فارور رولا کنترلش بکنید فقط ببینید اینا هم جزو پروتکتد کلاینت ها هستن که یادت بپنم اینا پشتش خراب خراب بگیرن بعد بعدش فارور رولا این تعریف بکنیم یا نه بچا کیاش رو بدی بذارش منو چی وب کچینگ دی پروکسی رو. خب. همین که بگیم که اصلا داشته باشیم یا نداشته باشیم دو تا. آها. حتما پالیسی‌های فایروالی نیست. پالیسی‌های چیه؟ نتورکیه. مثل این پالیسی‌ها. ما الان میام. می اینجا اینا همه ها پالیسی‌های مختلفان که دوز ریت سِت دیگه. من میگم آ افرادی که از این رنج آی پی میان می کلاً من خدمات فقط یه پورتی خالص بهشون بدم. فاور با لاین هم نمی‌خوام بهشون بدم. اوکی. اگه من میان میرفتم اون تعریف میکردم پالیسی ها برای همه یه جور میشد یا نه حالا من میخوام پالیسی نتورکی مختلفی داشته باشم اون وقتی که مجبورم رابط دارید بکنم و وقتی اگه میسک رو تعریف کدی بهتره که بنوشید کاری که حالا اگه کاری که جداونه تعریف به صورت لوژیکالی هم کارچک اینترنت رو در نظر میگیره اما برای اینکه کن اونجوری داد ایدوله بشه همه چیز میری یه yes. تیم و جو برابر وقتی که ادیسای کنی بهتره نه. که یه برای اونها در نظر که ترافیک و همه چیزشون هم چی هم بشه کاملا جدا میشه واقعا از اون پالیسیایی هم میتونیم جزء جزء بچونیم بهنا نه؟ اینکه پارت شرکی یه دیمه اینترنت پرطرف بکنی راه جای خوبی بدی از هم پارت هم بله دیگه من درست نکنم در این زمینه که روتین باید لازمت داشته باشی و همون کار شده که اولین به اون رنج آلپی اصلا بکونی برشون که دیگه بدیش دیگه درسته؟ سوال هستش؟ حالا رای کلیک بکنم دوباره اینجا رو نسپورچ بیام روی اقصاص نیو نسپورچ یه تویش بدم نه اینجا اینترنال رو متحقیش شدیم اکترنال رو هم؟ ببینه تو چ پرویمیتر نسپورک پرویمیتر نسپورک معمولا همون شرکی ها چی تونه؟ ژی امزد تونه واسه اکه قراره برای ژی تون like که جلسه یه بسی کنی که هرفه ایتر بارش بشیم یه لنه جدا تعلیم بکنی بهتره بیه چی تعلیم بکنی؟ پرویمیتر؟ خب تو بیاده در همون چی نویشته؟ پرویمیتر نسپورک یوزوالی به شامله کانتینش سر قرار فقط اینا رو روی اینترنت سر رو با پششششون خواهش تو در ادامت مینوشید خواهش میکنید سر برای رو رو دیگم بعد گفته هایی فیدیو جاید بی less واقعا عالیه گفته ببین اینجا امنیتش همتر از internal network اگه قرار بود امنیتش اندازه ای انترنت باشه که دی, دی امزد اصلا نمیشد خیلی ها فکس کنن دی امزد جایی که خیلی دیگه پالیسی ها پرتکت شده است و خیلی خفنه اوکی شاید که این کارم کرده چید اما قصد من از جداسازی دی امزد از شبه که لنم چیه؟ سروری که قرار روی انترنت باشن که لن نباشن که چی؟ اگه یه نفر رو تای اون سرره تو شرکه لن نواج که طرف بتونه ترافیک تو شرکه لند رو هم ببینه و بخونه یه شرکه کاملا کام شده یه جدا برای خودش داشته باشه همیدین؟ این جمعه رو به ازم داریم تا خطیقی همیدون بریم خب حالا آره ما این جلسه جرسه بجیگه میانیم اینا راه اندازی میکنیم و قوانید بین اینا رو همه رو میانیم مدیریت میکنیم ببینیم به چه صورتیه؟ بعد جلسه بعد مباحث معروض نسیم و جوجوده اگه روی نتوکی براک یه مروری بکنی خوبه من دیگه شدم خرطه با <تصفيق> باید نه، ساعت تا 8 به تا multimodal poca worship